گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم همچنان چشم گشاد از کرمش میدارم به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام خون دل عکس برون میدهد از رخسارم پرده مطربم از دست برون خواهد بود آه اگر زن که در این پرده نباشد بارم پاسبان حرم دل شده هم شب هم شب تا در این فرده جز اندیشه او نگذارم من امان شاعر صاحر که به افسون سخن از نی کل کمه قند و شکر می بارم. دیده ی به افسانه او شد در خواب کونسیمی زعنایت که کند بیدارم چون تو را در گذر یار نمی دید با که گویم که بگوید سخنی با یارم دوش می گفت که حافظ همه روی از دریا به جز از خاک درش با که بود بازارم